رابطه به مصابح تمرینی معنوی حالت نفسانی آگاهی و همه مظاهر اجتماعی سیاسی و اقتصادی آن به مرحله نهایی ویرانی می رسد رابطه بین مرد و زن آینه می شود که می تواند بحرانی را منعکس کند که همکنون گریبانگیر انسانیت شده است از اینجا که آدمها به طور روزافزون خود را با ذهن خیش یگانه می پندارند این بیشتر رابطه ریشه در هستی ندارند و به همین دلیل به منبع درد و رنج تبدیل می شوند و از مسئله ها و نزاه ها تغذیه می شوند. در حال حاضر میلیون‌ها نفر تنها زندگی می کنند و قادر نیستند رابطه سمیمی با کسی برقرار کنند یا نمی‌خواهند خواهند حادثه قنبار رابطه گذشته را تکرار کنند. بعضی ها هم در جستجوی اتحاد با قطب انرژی مخالف مدام از شاخه این رابطه به شاخه رابطه دیگر می‌پرند. از یک چرخی لذت و درد به چرخی لذت و دردی دیگر اده سازش می کنند به خاطر بچه ها یا به خاطر امنیت و یا به خاطر ترس از تنهایی با هم می‌مانند. و رابطه‌ی مخدوش و نابسامان را همچنان ادامه می‌دهند اینها به هیجان نزاع و درد و درگیری معتاد شدند با وجود این هر بحرانی نه تنها خطر ایجاد می‌کند بلکه فرصتی نیز می‌آفریند اگر رابطه‌ها الگوهای ذهنی را تقویت می‌کنند و موجب فعال شدن دردمندی بدن می‌شوند پس چرا این واقعیت را نپذیریم و از آن فرار کنیم؟ گریز از رابطه و انتظار برای پیدا شدن فردی ایدهال که بتواند همه نیازهای عاطفی تو را پاسخ بدهد و تو را کامل کامل کند هرگز چاره خلع پرناشدنی شدنی وجود تو نیست امکانات نهفته در بحران و وضعیت دشوار هنگامی به فعلیت می رسند که تو همه واقعیت‌های موجود دران بحران ها و وضعیت دشوار را پذیرفته باشی. تا وقتی که آنها را انکار می کنی، تا وقتی که می‌کوشی، تا از آنها فرار کنی، تا وقتی که آرزو می کنی کاش که شرایط به گونه دیگر بود، پنجری فرصتها ها روی تو گشوده نمی شود و تو زندانی آن شرایط می مانی. شرایطی که دیگر تغییر نمی کنند و یا بدتر هم می شوند. با پذیرش واقعیت های موجود از واقعیت های موجود تا حدودی رها می برای مثال وقتی بدانی که ناهمهنگی وجود دارد از طریق دانستن این ناهماهنگی انصر تازه به وجود میآید آنگاه ناهماهاهنگی نمیتواند در برابر دگرگونی مقاومت کند وقتی بدانی که قرار و آرامش نداری دانستن تو فضایی آرام به وجود می آورد که مشفقانه بیقراری و ناآرامی تو را در بر می گیرد و آن را به قرار و آرامش تبدیل می کند. تا وقتی که دگرگونی درون مد نظر است از دست تو کاری بر نمی آید تو نمی توانی خود را و یا یار خود را دگرگون کنی آنچه از دست تو برمیآید ایجاد فضایی است که در آن دگرگونی بتواند واقع شود فضایی که عشق بتواند در آن بشکوفد فضایی که استحقاق جذب لطف و فضل خدا را داشته باشد بنابراین هرگاه رابطه تو مختل شده است هرگاه رابطه تو حاصلی جز ایجاد عصبیت در تو و مخاطب تو ندارد نگران نشو آنچه در تو پنهان و در تاریکی بوده است اکنون آشکار و آفتابی شده است این فرصتی است برای نجات و رهایی هر لحظه بذر شناخت و آگاهی را در خود دارد در هر لحظه فرصتی فراهم میآید که تو از آنچه در درونت می‌گذرد با خبر شوی. اگر در تو خشم هست، بدان که در تو خشم هست. اگر در تو حسد هست، بدان که در تو حسد هست. اگر در تو میل به دفاع، نزا اثبات خود، مهر طلبی یا دردهای عاطفی هست آنها را ببین و بشناس، آنگاه، رابطی تو با دیگری، به تمرینی معنوی تبدیل می شود. اگر رفتار ناآگاهانی یار خود را مشاهده می کنی، آن رفتار را در آغوش پر از مهر خود بگیر و بدان که تو واکنشی نشان نخواهی داد. ناآگاهی او و آگاهی تو نمی توانند در کنار هم زندگی کنند. آگاهی همواره ناآگاهی را میزدایت انرژی نهفته در پشت حمله و خشونت حضور عشق را تاب نمی آورد. اگر نسبت به ناآگاهی یار خیش واکنش نشان بدهی، نیز ناآگاه خواهی شد. اما اگر در همان لحظه واکنش خود را ببینی و آن را وارد هیته آگاهی خود کنی، چیزی را از دست ندادی. بشریت نیاز به تحولی بنیادی دارد. این تحول بنیادی تنها شانس بشر برای بقاست تحول بنیادی بر رابطه‌ی تو و کسی که دوستش می‌داری شدیداً اثر خواهد گذاشت رابطه‌ی بین آدم‌ها تا کنون تا بدین حد خسمانه و خشن نبوده است رابطه چیزی نیست که تو را خوشحال کند بلکه چیزی است که می‌تواند تو را نسبت به خود آگاه تر کند اگر این حقیقت را بدانی توقع تو از رابطه با دیگری دگرگون می شود و بسیاری از اختلافات شما خود به خود برطرف خواهد شد آنگاه رابطه می تواند طریقی برای نجات و رهایی باشد و بذر آگاهی بر این را در تو شکوفا کند آنهایی که به الگوهای کهنه می چسبند رنجشان، خشمشان، آشفتگیشان و عصبیتشان روزافزون خواهد شد. گمان می کنم که برای اینکه رابطه ای تبدیل شود به یک تمرین معنوی هر دو طرف رابطه باید از خود مایه بگذارند. برای مثال طرف من هنوز به الگوهای کهنه حسادت و تملک چسبیده است. من بارها کوشیدم تا این نکته را برای او روشن کنم اما او نمیتواند بفهمد. چه تعداد آدم باید مایه بگذارند تا زندگی تو به یک تمرین معنوی تبدیل شود؟ نگران همکاری یار خود نباش آگاهی فقط از طریق توست که پا به دنیای ما میگذارد لازم نیست منتظر آگاه شدن دنیا بمانی تا بعد از اینکه دنیا آگاه شد آنگاه تو هم آگاه شوی. ممکن است انتظار تو تا ابد طول بکشد همدیگر را به ناآگاهی متهم نکنید. به محضان که شروع به بحث کردن میکنی، خود را با موقعیتی ذهنی برابر ساخته ای و نه تنها از آن موقعیت دفاع میکنی، بلکه مواظب این خود نیز هستی. نفس دارد تغییر میکند. تو ناآگاه شده ای. گاهی شاید لازم باشد به بعضی از ویژگی رفتار یار خود اشاره کنی اگر خیلی هوشیار باشی اگر حضوری شدید داشته باشی می توانی خالی از نفسانیت به این ویژگی اشاره کنی بیان که او را سرزنش کنی متهم کنی و یا خطاهایش را به رخ او بکشی وقتی یار تو ناآگاهان رفتار میکند همه قضاوت ها را کنار بگذار قضاوت قاطی کردن رفتار ناآگاهانی دیگران با آن چیزی است که واقعا هستند قضاوت فرافکنی ناآگاهی خود به دیگران است ما گاهی ناآگاهی خود را به دیگران فرافکنی می کنیم آنگاه تصویر خود را در آینه وجود آنها می بینیم و آنها را محکوم می کنیم. کنار گذاشتن قضاوت به معنای آن نیست که اگر اختلالی در رفتار کسی دیدی و یا اگر ناآگاهی را در کسی مشاهده کردی آن را به جا نیاوری کنار گذاشتن قضاوت یعنی محض آگاهی باش نه واکنش محض واکنشی عمل نکن در این صورت از واکنش آزاد خواهی بود و یا اگر واکنشی از تو سرزد، در همان لحظه تو نسبت به واکنش خود آگاه هستی و تویی که به آن اجازه می تا واقع شود. به جای جنگیدن با تاریکی، چراغی برافروز، به جای واکنش نشان دادن به توهمات دیگران، شاهد توهم باش. حضوری آگاه بودن، فضایی می برای حضور عشق. فضایی که به همه آدم ها اجازه می دهد تا همان گونه باشند که هستند چون این حضوری همان کیمیاست که مسها را به طلا تبدیل می کند اگر این حالت را تمرین کنی یار تو دیگر نمی تواند با تو باشد و آگاه نباشد اگر هر دوی شما بپذیرید که رابطه باید تمرینی معنوی باشد بسیار بهتر خواهد شد آنگاه می توانید افکار و احساسات خود را به محض که به وجود میآیند به یکدیگر ابراز کنید بدین سان دیگر ظرف زمانی به وجود نمیآید که در آن احساسات بیانناشده و یا اندوه بتواند بماند و رشد کند یاد بگیرید که احساساتتان را بدون سرزنش یکدیگر بیان کنید یاد بگیرید که با حالتی گشوده و غیر دفاعی به دیگری گوش بسپارید. به دیگری مجالی بدهید تا بتواند افکار و احساسات خود را بدون ترس و خجالت بیان کند. حاضر باشید. متهم کردن، دفاع کردن، حمله کردن، آنگاه همه الگوهایی که برای حفاظت و تقویت نفس طراحی شدند ضائد خواهند شد. فضا دادن به دیگری و به خود نیز حیاتی است. بدون این فضا عشق نمی بالد. اگر دو عامل ویرانگر رابطه را از میان برداری وقتی که دردمندی بدن استحاله پیدا کرده است و تو دیگر خود را با ذهن خیش و موقعیت ذهنی خیش برابر نمی دانی و اگر یار تو نیز همین حال را داشته باشد آنگاه هر دو می توانید موهبت به گل نشستن رابطه خود را شاهد باشید. به جای آنکه که درد و رنج و ناآگاهی خود را در آینی دیگری ببینید، به جای ارزای نیازهای معتاد نفس خود می توانید نور پرفروغ عشقی را که در اعماغ وجود خود احساس می کنید به یکدیگر بتوانید. بتابانید. نوری که حاصل تجربه یگانگی خود با همه چیزو همه کس است این عشق همان عشقی است که زد ندارد اگر تو آزاد هستی و یار تو هنوز خود را با ذهن خویش یگانه میپندارد این وضعیت چالشی بزرگ برای توست نه برای تو بلکه برای یار تو نیست زیستن با کسی که روشن شده است آسان نیست و شاید آنقدر آسان است که نفس به شدت احساس تهدید می کند از یاد نبر که نفس محتاج مشکل و مسئله نزا و دشمنی است تا بتواند احساس جدایی را تقویت کند احساسی که هویت جداگانه و متفاوت نفس را شکل می دهد. ذهن روشننا شده یارتو عمیقا آزرده خواهد شد زیرا موقعیت تثبیت شده ای آن مقاومت خود را از دست می دهد به میافتد و تا مرز نابودی و محو خود پیش خواهد رفت. دردمندی بدن واکنش های ویژه میطلبد و آنها را نمییابد. دردمندی بدن نیازمند جر و بحث غم و درگیری است و اینها را به دست نمیآورد. این نکته را همواره به یاد داشته باش بعضی از آدمهای بیتفاوت خنسا منزوی، خجالتی و گوشهگیر ممکن است خود را روشن شده تلقی کنند یا حداقل اینگونه وانمود کنند که حال آنها کاملا خوب است و هرچه نقص است به یار آنها مربوط می شود مردها معمولا بیشتر دچار این حالتند تا زنها مرده ها معمولا یار خود را کم عقل و یا احساساتی تلقی می کنند اما اگر بتوانی عواطف خود را احساس کنی آنگاه از مشاهده درخشش کالبد درونی خیش چندان دور نیستی اگر معمولا در ذهن خود زندگی می کنی فاصله تو از این نور بسیار زیاد است پیش از رسیدن به این نور لازم است که آگاهی را به قلم رو به کالبد خیش ببری. اگر نور عشق و شادمانی از تو ساته نیست، اگر حضوری کامل نداری، اگر به روی بیکرانه گشوده نیستی، بنابراین روشن شده هم نیستی. یکی دیگر از میزانها برای سنجش خود آن است که در هنگامی چالشها و دشواریها کیفیت رفتار خیش را مشاهده کنی. اگر دوچار توهم نفسانی باشی، آنگاه زندگی چالشی پیش پاید می‌گذارد تا صورتهای گوناگون ناآگاهی درونت را آشکار کند. ترس، خشم، حالت تدافعی گرفتن، قضاوت، افسردگی و غیره. اگر با کسی در ارتباط هستی، بیشتر چالشهای تو از طرف او خواهد بود. یعنی او برای امتحان توست. برای مثال ممکن است یک زن با مردی زندگی کند که بی تفاوت است و مرتب در ذهن خیش فرو می رود. مرد از گوش دادن به حرفهای همسر خیش از بذل توجه کافی به او و دادن مجالی به همسر خیش برای بودن ناتوان است. مرد به دلیل فقدان حضور است که ناتوان است. این ناتوانی چالشی است برای زن. قیبت عشق در رابطه که زن آن را بیشتر از مرد احساس می کند موجب دردمندی بدن زن می شود و به واسطه ی همین دردمندی بدن است که به مرد خیش می تازد. او را سرزنش می کند. از او انتقاد می کند. دست به اشتباهاتی عمدی می زند و غیره. این کارهای زن به نوبه خود چالشی می شود برای مرد مرد برای دفاع از خود در برابر حمله‌های دردمندی بدن زن بیشتر به اعماغ موضع ذهنی خود فرو میرود موضعی که به نظر مرد موجه است از خود دفاع میکند و یا دست به ضد حمله میزند سرانجام این عمل دردمندی بدن مرد را نیز تشدید میکند وقتی دو طرف رابطه تا این حد سلطه ذهن برخیش را میپذیرند به اعماق ناآگاهی خشونت عاطفی های بیرحمانه و ضد حملههای شدیدتر میرسند این وضعیت فروکش نمیکند تا اینکه آتشفشان دردمندی بدن هر دوی آنها از فرت خستگی غیر غیرفعال میشود تا زمانی دیگر این فقط نمونه‌ای بود از سناریوهای بیشمار. کتاب‌های بیشماری میتوان نوشت درباره هایی که ناآگاهی خود را در رابطه زن و مرد آشکار میکند اما همانطور که پیش از این گفتم وقتی ریشه اختلال در رابطه خیش با دیگری را میشناسی دیگر لازم نیست جلوههای گوناگون آن را هم بشناسی بگذار نگاهی گذرا به سناریویی بیفکنیم که همکنون درباره آن سخن گفتم. هر چالشی که در این رابطه وجود دارد مجالی است پنهان برای رها شدن. در هر ساعت از روند این رابطه مختل میتوان از ناآگاهی رها شد. برای مثال عمل خمانه زن میتواند هشداری باشد به مرد برای بیرون آمدن از وضعیت یکی انگاری خود بازه بیدار شدن نسبت به لحظه حال حضور پیدا کردن به جای یکی شدن بیشتر بازه و فرو رفتن بیشتر در ناآگاهی زن به جای آن که این دردمندی بدن خیش شود میتواند آگاهی شود ناظر بر دردهای عاطفی درون خیش بدین سان زن به کیمیای نیروی لحظه حال دست میابد و درد و رنج خیش را استحاله میبخشد این کار فرافکنی اتوماتیک درد و رنج را از میان بر میدارد. او دیگر میتواند احساسات خیش را بی ترس و بدون شرمندگی با همسر خیش در میان بگذارد البته تضمینی نیست که همسر او به حرفهایش گوش بدهد اما حداقل همسر او مجالی مناسب به دست می‌آورد تا حضور پیدا کند و چرخه احمقانه و غیر ارادی عمل بر اساس الگوهای کهنه را بشکند اگر زن این فرصت را از دست بدهد مرد می‌تواند ناظر بر واکنش‌های ذهنی عاطفی خود نسبت به دردهای زن و حالت دفاعی خود باشد مرد می تواند بیدار شدن دردمندی بدن خیش را مشاهده کند و بدین سان آگاهی را به ساحت احساسات خود وارد کند بدین سان فضای آرام و شفاف و ناب بیداری پا به ارسی زندگی آنها میگذارد. گذارد دانستن نظارتی ساکت و خاموش مشاهده این بیداری درد و رنج را نفی نمی کند بلکه به فراسوی درد و رنج می رود. این بیداری به درد و رنج مجال بودن میدهد و بدین سان آن را استحاله میبخشد. این بیداری پذیرای همه چیز هست و بدین سان همه چیز را دگرگون می کند این گونه از که زن میتواند تواند دری را به روی خیش باز کند از آن در بگذرد و در فضایی باز و روشن و همسر خیش بپیوندد اگر پیوسته و یا در اکثر اوقات در رابطه خیش حضور داری حضور تو بزرگترین چالش و امتحان برای یار و یا همسر توست او تاب حضور تو را ندارد و به ساحت ناآگاهی خیش میخزد اگر مستعد حضور تو باشد از دری که تو به رویش گذر خواهد کرد و در فضای روشنی و آزادی و سبکبالی به تو ملحق خواهد شد در غیر این صورت تو از او جدا خواهی شد همچون جدایی آب از روغن در یک لیوان حضور نور برای کسی که میخواهد در تاریکی بماند دردناک است